دلم رمیده شد و غافلم من در که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش چو بید بر سر ایمان خیش می که دل به دست کمان ابرویست کافر کیش خیال حوصله بحر می پزد حیحات چه هاست در سر این قطره محالندیش به زمان مجه شوخ آفیت کشرا که موج میزندش آب نوش بر سر نیش ز آستین طبیبان هزار خون بچکت گرم به تجربه دستین هند بر دل ریش به کوی میکده گریان و سرفکنده روم چرا که شرم همی آیدم ز آسل خیش نه عمر خیز بماند نه ملک اسکندر نزا بر سر دنیا یه دون مکن در بیش. بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ غزانهی به کفا ورز گنج غارون بیش